بسم الله الرحمن الرحیم در درس قبلی دو قاعده از قواعد صرف رو توضیح دادیم یه قاعده دیگه فقط در این کتاب بیان می‌کنه کتب دیگر قواعد بیشتری رو ذکر می‌کنند ولی ما به آنچه کتاب آورده است اکتفا می‌کنیم سومی که کتاب آورده است متا تقلب تا او افتعلا دالن خب میدانیم که کلمه‌ای که به باب افتعال برده شود تایی داران اضافه میگردد جمع اج تمعه ی همزه در ابتداش و یه تا بعد از فاول اضافه می حالا میخواد بگوید که همین تا در بعضی کلمات تبدیل به دال می شود ما تا تقلبو تا او دالن چه زمان قلب می تای باب افتعال به دال جواب شو میده و متا کان فاعو فاعو افتعله او آو ذالن، آو زاین. زمانی که فاع افتعله، یعنی فاع الفعل، اون فعیلی که میبریمش به باب افتعال باشد دال، و زا. این حرف. دال، ظال ایللی که در اول ابتدایی بهمون میگفتن نقطه دار دال زال نقطه یا زا ز این ست حرف قلبت دالن در این حالت تبدیل می شود تا به دال با عبارتی ساده, دیگه ساده تر اگر فعل سلاسی مجردی که فاعل فعلش دال هست یا ذال هست یا ذا زمانی که ما بخوایم همچنین فعلی رو به باب افتعال ببریم در باب افتعال دیگه تابش نمیدیم بلکه به جای تابش دال می یا به دیگر تال رو طال رو, رو تبدیل به دال میکنیم مثلا ذکره ذاکره فاول فعلش ذا هست زال هست اگر ما اینو به باب افتعال ببریم میشود اذ تکره افتعاله ولی قائده که امروز خوندیم به ما میگه تا رو تبدیل به دال میکنیم میگیم اذ دکره پس ذکره که برود به باب افتعال میشود اذ دکره اذ دکره به همین سادگی مثال دیگه کتاب آورده است فتقول في افتعل من الدرء باس درع ركبه باب افتعال ببري ميگويين اد دراء اد دراء اصلش بوده اد تراء اد طراء افتعل اما تا تبدیل به دال شده خود دو تا دال که بشن دال در دال ادغام میشه خوانده میشه ادرا یا او افتعال ادراء و من ذکر از ذکر که در هست میشه اذ دکره که اصلش بوده اذ تکره و من زجر از دجره که اصلش بوده تجارا اىذ در قرآن وارد شده فهل م مدکر فهل م مدکر البته مدکر خودش ما رو به یه قاعده صرفی دیگه میبره که در این حالت را رو هم میتونیم تبدیل به دال کنیم اىذ ذکر ک مزارش میشهیه دک رو و میتونیم ذالو تبدیل بدا کنیم یا که اسم فالش چه مدکر. فعلا به ماول قعدده رو اشاری نکرده است در این کتاب قعد که در این درس گفت، همین قعدده بسیار ساده بود که هرگاه، فعلی فاول فیلش دال ظال زا باشد زمانی که به باب افتعال برد شود تای باب افتعالش تبدیل به دال میگردد این بود قاعده سرفی قواعد سرفی دیگه رو در این کتاب نیاورده است چون نیاورده است ما هم به اینجا اکتفا میکنیم و درس بعدی انشالله که نور تاکید هست در جلسه بعدی